سلام خدمت شنوندگان عزیز. از اینکه امروز رادیو ما را انتخاب کردید خیلی خوشحالیم. با ما همراه باشید. رادیو گردوی شغای کشمن کشام تمام روز ترکد سلام نور و سلام شماهی مودا دوباره قامت بگو جهان زیباتر استی های امروز به این صورته که در بخش اول با برنامه آهنگ ایرانی را هستیم. در, بچه آموزش را تقدیم در قسمت هستیم. در بخش دوم آموزش آشپزی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در قسمت سوم برنامه به پندهای گویافت اساس داره و در آخر هم سریال کونچ دراکولا پخش میشه. برنامه بعدی آهنگ ایرانی آهنگ ایرانی I'm you. Yes. بری شد که گفتم میخوامد دست خودم نیست که روز میپامد خیلی دوست دارم دست رو تو بگیرم اگه اشاره کنی من برات میمیرم اصلا یه خویشو چشمم تو چشم تو افتاد اصلا یه خویشو خدا تو رو به من داد اصلا یه خویشو که تو گلم نشستی محارا دست دستار بردارم خطرون نمی فهم کسی هنوش به اندازه من مخونه یه تازه ی من ببونه حرفاتو بزن سکوتو بشن سانیه سانیه صدا استقاروم نفسو استعفلیم داره نمیزونه که دیفون نباشن نسم از تو به خودم چه اکنه لفتند تو شده بیقرار ای این عشق و پریشونی و دیوونه گیاشم سالی از سالی صدا استقارو به نفس و از اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم یش سال لبخند تا رام می سالی از سالی سه دست از سر اولین بار نمی‌زوره که دیوونه نباشه. خنده بیر سعی سو به خودش کلابخانه‌تو شده کی آشام؟ یسونی صدا آروم اول که نباشم. از آروم نفسات منافسات از آفرین دور اینی زود که دیوونه باشم. ای سعیت تو به خودم شکل لبخند داشتم شدم ای راری این شکری شونه یا دیوونه ی آشام. حال چطور عشقام خوبی بی هوشی کجایی دست به راستنه تو من موندم و تنهایی من موندم و سکوتو یالمه ترانه یالمه خیانو حسای عاشقانه نبود ی اون چیزی چی خطرانه گستم پس چه از بده رستان من موندم اون تنها من موندم اون یا عالم سرانه یا عالم خیالو حرفایم عاشقانه نبودی و ندیدی چقدر ترانه گفتد درخاطر بودی عشقم، چطور پس خورده جای هر ندیدی؟ تو خادم باشی نشه نه یاد روزی که شب من تنهایی دردم در دل بنگیش خان جلو چشمم که بود نیستو گشتم همه دنیا رو نگا نه بود نیستو دردم در دل بنگیش خان جلو چشمم که بود نیستو گشتم همه دنیا رو نگا چرا تو تو عشق همش به فکر رفتن از و دل دادنش دل بریدن و خوب بلدی با این که سرد و نگاه یه حسیه که به من میگه پای عشقت بمونم شاید رو خوب بیگه که بود نیست و یهشم همه دنیار رو نگرد نبود نیست هردم دانه هلو من یهشم اندوالت چشم که بود نی سمزش روزی که خسته بشی و بخوای منو ترکم کنی آخه وقتی با من این هفته رفتم میزنی مگه چی خواستم به جز این که یکم درکم کنی آخه بی انصافیه تا همین کافیه تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی من به هر دری زدم تو رو از دست درم تا کجا میخوای به این فاصله مجبورم کنی از بیشم نرو از چی تو بخوای بخوایی همونیشم نرو از نستم به پرسد بده که بگم بگم دیوانتم منو و درکم کن یکم منو درکم کن یکم از نرو از چی تو появامونیشم نرو از نستم به پرسد بده که بگم بگم دیوانتم منو و درکم که توی من فقط خواستم بگم فکر من باش یکم فکر من که غصه هم قده تموم عالمه نمیشه دست کشید ازت نمیشه دل برید ازت نمیشه پنهونش کنم این حس عاشق بودنو کاش بدونی خواستم اونقدر به بابستم اونقدر میگم که بابرت کنی شیطون بخوای همون میشم نرو حسسم به تو سر دلم که بگم بگم دیوونه‌ستم منو درکم کن اون یک فن و کن از پیشم نرو از بخوای همون میشم نرو حسسم به تو سر دلم که بگم بگم دیوونه‌ستم منو درکم کن منل حچیتو بخو همو میشم رو سه سنگ فوت سان دیگه میگن بگوی غلام سمرو دشم کو یکان آهنگرییم آهنگرییم خوب اومید بوارم تا اینجای برنامه ها راضی بوده باشی تماکان با ما همراه باشی برنامه بعدی آشپزخانه به نام خدا سلام در نزدیکی شهر روم روستایی هست به نام است که سوسی ساخته که همه شما اونو میشناسین این روستا مبتکر ساخته سوسی شده که الان و امروز همه اون سوسو میشناسند. سوسیه به نام بلونزه که به نام اون روستاست. درست کردنش خیلی ساده و خوشمزه است اما ما روشی رو امروز در این برنامه به شما نشون میدیم که هم فوقلاده مقروم به صرف است و هم خیلی ساده و آسونه. ضمن تو برنامه امروز ما برای 20 نفر لازانی درست میکنیم. هم برای کسایی که فیر دارن و هم برای کسایی که فیر ندارن. ما روی شله آتش گاز برای شما لازانه ها درست که خیلی خوشمزه و عالی میشه و شما دیگه نیازی ندارید به اینکه حتما فر داشته باشید و محدودیتی برای پخت این غذا دیگه وجود نداره با ما باشید این برنامه رو ببینید که اولا چجوری اینقدر مقروم به صرفه شده و دو اینکه چه چجوری ما اونو میپذیم روی شله آتیش گاز با ما باشید برای درست کردن این ساسه خیلی ساده که ما اونو طراحی کردیم برای سرعت زیاد مغروم به صرف بودن و برای یک در واقع ماده غذایی بسیار شگفتنگیز و جالب که میتونه سرعت و کار و خیلی بالا ببرو از محضورت همش خیلی زده ببرید و اون برقه های لازانی های نیمه پخته زرما کارونه و شما میبینین که این لطافت و نیم پخت بودن چه تأثیری در آشپزی ما خواهد گذاشت نگاه کن این از لطافتش این شفاف بودن و نیم پخت بودن کاری میکنه که سرعت پخت ما خیلی بالا بره و نیازم به روغن نداشته باشیم برای این آشپزیمون حالا در طول برنامه خواهید دید که چه جوری برای 20 نفر با این مقدار ماده غذایی آشپزی خواهیم کرد 6 تا گوجه فرنگی دارم 180 تا 200 گرم پنیر پیتزا رنده شده میخوام دو نیم تا سه شاخه کرفس یه نیوان آب گوشت جوز هندی که حتما یک تقریبا میتونم بگم نصفش رنده خواهم کرد یک پیاز بزرگ و 150 گرم گوشت چرخ کرده با 150 گرم چجوری میشه برای 20 نفر لازانی آفو ما اینجا 200 گرم سویای خیز کرده داریم کاری در این برنامه میکنیم که امکان نداره کسی متوجه بشه تو غذای ما سویا وجود داره هرچند که خود من اعتقادم دارم سویا یه ماده غذایی مفیده تو برنامه غذایی و استفاده کردن ازش خیلی خوبه هم مقروم رو سیر میکنه و هم خودش پروتئین داره جعفری رو که خایید کجا اضافه میکنیم یه دونه هویج بزرگ می خایم یه قاشق غذایخوری رب گوجه و یه بسته از این لازانیاهای زرماکارون که نیم پخته است یه مایتابه بزرگ دارم و یه ظرف شیشهی نشکن که این ظرف شیشهی نشکن و مثل برنامه های دیگه عادی اون رو می‌ذاریم توی فر اما کار جالبی که می‌خوایم بکنیم تراحیی که می‌خوایم بکنیم و در واقع خدمتی که این ماده غذایی به ما میکنیم اینه که دیگه محدودیتی وجود نداره برای اینکه ما نیاز داشتیم به فر برای پختن ها توی ماهیتابه هم میشه با کمترین امکانات لازانیا پخت اینو برای کسایی میگم که مثلا دانشجوهایی که خیلی دلشون کردی کری لازانیا بخورن خیلی ساده و ارزون میتونن برای 20 سفر توی این ماهیتابه ها درست کنن پس برنامه امروز ما رو از دست ندید اما چیزی که من بهش احتیاج دارم برای درست کردن این غذا یه وسیله مثل اینه که باید کل این مواد تبدیل کنه به یه مایع حالا من چیکار میکنم؟ حالا باید سویا رو مزهدار کنیم اول گوشت چرخ کردهی و میریزم که یه مقداری هم چربی داره و بعد خود سویا رو میریزم ما با این روش کاری میکنیم که بوی ظهم سویا رو هرگز احساس نخواهید کرد یه پیاز بزرگو میندازم توش شش می تا گوجه, گوجه فرنگی هم اضافه می‌کنم و برای اینکه خوش رنگتر و خوش عطر و خوش تمتر بشه یک قاشق غذاخوری پوره گوجه فرنگی یا رب گوجه فرنگی هم اضافه می‌کنم بعد از اون میریم سراغ کرپس مونتا اول یک کمی فضای از اساسو باز می‌کنم و دونه دونه کلپسارم اضافه می کنم بعد نوبت حویجه یه نکته ای که دوتا نکته ای که اینجا باید بگم که خیلی جالبه اینه که اگه قرار بود که به روش قدیمی لازانی ها درست کنم الان یه دیگه بزرگ آب جوش اینجا بود و یه پارچه هم انداخته بودم کتونی اینجا خمیرها رو بعد می دونه دونه توی آب و پهن می تا آبش برو و بعد طبقه طبقه قض اما با این روش جدید اون رو حذف کردیم و سرعت رو چندین برابر بیشتر کردیم با تمی بهتر این یه نکته نکته دی که سس هم ندارم چیکار میکنیم که نیازی نداریم به سس بشامل برای درست کن این ها؟ طرایی که من کردم اینه که پنی رو به این سس اضافه کردم صد پ گرم شو میریزم توی این و یه مقدارشو رو برای روی این دوتا لازانی ها نگرم میدارن. این 120 تا ۱5 خوبه. اینطوری هم پنیر کمتری مصرف کردید هم طبر پنیر در کل این لازانی ها برای 20 نفر هست و دیگه لازم نیست هی بخواین طبقه, طبقه چیزی رو اضافه کنید. مایه آماده است هیچی شاید دست ندید سرعتش هم خیلی بالاست اینجا یه تابه بزرگ دارم ببینید سبزیجات چه حجمی به این مایه دادن میبینید چقدر زیاد شد 150 گرم گوشت چرخ کرده و اون مقدار سبزیجات به ما یه آنمه سست داد اما چی باعث میشه که این بافتا خیلی خوب پخته تر و خوشمزه تر بشن آب گوشت حالا یکی دوست داره آب سبزیجات میزنه یکی دوست داره آب مرغ بریزه یکی دوست داره آب گوشت بریزه اما دستور اصلی سس گوشته آب گوشته آب گوشت رو بریزید شعله رو زیاد میکنیم و به همه جا میرسونیمش میبینید غلیظتش چه شکلیه حالا بعد این مایه بپزه اما یه چیزو فراموش نکنید این مایه یه خوشمزه میخواد که تو این بسته مندی هست تو بسته های بزرگش دوتاست چون برای بیس نفر میخواهیم استفاده کنیم ما هم از این دوتا پاکت استفاده میکنیم خوب نگاه کنیم یه عدویه خیلی خوشمزه است و دیگه هیچ چیزی جز جوزه هندی نیاز نداره بهش اضافه کنید خوب همش میزنیم بعد با یه رنده خیلی ریز که مخصوص این کاره یکی ای از این میکنیم به رنده کردنش این خوشبی و خوشعکس میکنه و خود این همی که که و هم یکی از این مواد که سایر هم خوشمسارو هم خوش خوشعکسر میکنه وقتی که این جوزای هندی رو رنده میکنید حتما مختل توش رو ببینید یعنی اینقدر زیبا و این در واقع آفریده های خدا و اینکه آدم واقعا متعیر میشه به این چقدر زیباست و عطر بی‌نظیری هم داره نصف بیشترش رو رنده می کنم بعد همش می‌زنم وقتی که مایه رو هم زدم حالا درشو میذارم تا سبزیجات آبش رو به مواد دیگه برسونه و با هم قخروت بشن و خوب جا بیفته اما یادتون باشه این مایه نباید غلیظ بشه بلکه باید خاصیت مایه بودنشو داشته باشه با ما باشید. بذلت سس باید همین شکلی باشه. آب سبزیجات خارج شده و رفته به خورد مواد دیگه و حالا خیلی خوشمزه شده. از این ورقه ها می خواهیم. اول اونی که تو فره رو قرار درست کنم و میچینم بعد از این سس میریزم روی این ورقه ها. همه جاشو فرق کنین. سر کنین روی این برقه ها رو خوب بپوشونیم. بعد لایه بعدی رو میذارم. و دوباره روش رو از این ماهیه میریزم. میبینین چقدر راحته؟ سرعت کارمون دو برابر شده. دوباره یه لایه دیگه. و به همین شکل روش رو ماهیه خیلی آسونه. این اون روشی که سر میش توی فر. خوب روش رو بپوشونیم. این جایش بدون ساس بمونه. بعد دوباره حین پخت آب سبزیجات کمک میکنه که این ورقه ای لازانیا خیلی خوب پخته بشه. حالا پنیر می‌ریزیم. بدونه که نیاز باشه تو تمام طبقاتش پنیر بریزید، فقط روشو برای زیبایی پنیر می‌ذاریم که تو خود سس پنیر بود. این یکی رو می‌ذاریم توی فر. حرارت دو طرفه، زمان 10 دقیقه، 220 درجه سانتیگراد. اینی که تو فره خیلی سریع آماده میشه حالا میریم اونی که توی تابه رو درست کنیم سس رو جمع میکنم از این ورقه ها کف تابه می‌چینم طوری بچینیم که سس روی در واقع خمیره باعثه روی ورقه های ما باعثه بعد چیلو می‌کنم روش رو سوس گذاشتم دوباره از این ورقه ها میچینم و سس رو از اطراف تابه جمع میکنم و میذارم روی دوباره مایه همه جاشت رو سپخش کنین چون قراره شما لازانی ها رو توی تابه بپذین دوباره حرارت تابه باعث پخت این ورقه ها میشه اون فقط تو ده دقیقه آشیاشو رو جمع کنین و خوب روش رو صاف کنین پس اینطوری هم میشه لازانی ها پخت بعد روش رو پنیر میزیم درجا میذاریم و زیرشو رو روشند میکنیم بعد از ده دقیقه یه لازانیایی دیگه داریم که توی تابه پخته شده بعد برای اینکه که عطر عالی جعفری رو توی غذا احساس کنیم مثل بعضی ساندیجا که بینش جعفری تازه میزن جعفری تازه رو خورد میکنیم و وقتی غذا پخته شد هم به عنوان تزمی... تزین و هم به عنوان یک مکملی که در کنار این غذا خیلی عطر خوشبزه و تن عالی بهش میده از این جعفری استفاده می پس هم تزین شده و هم یه تن عالی بهش داده با باشید حالا دیگه لازنیاه ها آماده است یه دونه روی گاز یه دونه توی فر جعفری خود شده رو می روش هم تزینه و هم خیلی خوشمزه تر میشه وقتی جعفری تازه رو با این دازانی ها بخورید همه جاش بپاشین خیلی خوش رنگش میکنه و خوشمزدهش میکنه خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو دوست دارید تا برنامه بعدی خدا نگفت تقریبا به وسط برنامه ها رسیدیم بیشتی که تا الان همراه برنامه های ما بودید و گوش به برنامه های مازدید برنامه بعدی پنتای گویا ترجیح می دهم تنها باشم و بابقا تا اینکه در رابطه ای باشم که به خاطرش لازم است عزت نفسم را قربانی کنم آینده کدام بود که بهترین روزهای عمرم را حرام دیدارش کردم میدونی بهشت کجاست یک فضای چند وجب در چند وجب بین دستای کفی که دوستش داریم باورت بشود یا نه روزی میرسد که دلت برای هیچ کس به اندازه من تنگ نخواهد شد برای نگاه کردنم، خندیدنم، اذیت کردنم و برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی، روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود. میدانم روزی دیگر نیستم و هیچکس کس تکرار من نخواهد شد. که آشق یه نفری واسه خوشگلیش این عشق نیست هوسه اگه عاشق یه نفری واسه پر انرژی بودنش این عشق نیست حس تحسینه اگه عاشق یه نفری واسه اینکه همیشه کمکت میکنه این عشق نیست حس تشکره ولی وقتی عاشق نفری و نمیدونی واسه چی؟ نمیدونی واسه چی عاشقشی؟ این اشتواقعی بیش از آنکه درباره زندگی، گذشته و شخصیت من قضاوت کنی خودت را جای من بگذار از مسیری که من گذشتم عبور کن با قصه ها، تردید ها، ترس ها، درد ها و خنده هایم زندگی کن یادت باشد، هر کسی سرگذشتی دارد هرگاه به جای من زندگی کردی؟ آنگاه می توانی در باره من ضاابت کنید. مهم نیست اکنون زندگیم چگونه میگذرد؟ آشق آن خاطراتی هستم که از ذهنم قبور می کنند و باعث لبخندم می گاهی باید خود را برداشت و برد. روزگار عجیبیست. این روز ها انگار که انسانها به دست هم پیر می شوند نه به پایه هم مانند نباختن پیانوست ابتدا باید نواختن را بر اساس قواید یاد بگیری سپس قواید را فراموش کنی و با قلبت بنوازی بچه که بودیم شبها فکر میکردیم فردا چی بازی کنیم آنها فکر می فردا زندگی قرار چه بازی با همون بکنه خدا با من است و همه چیز نیکن است خدا با من است نظرات خودتون رو با ایمیل علیه و ویده 061 اکسان در میان بگذارید برنامه بعدی سریال کونت دراکولا برای من حدود هفت سال پیش در سال ۸5غا شد اسمم جانااتناکردم در لندن زندگی می کنمم. کارم خرید و فروش خونه برای دیگرانه روزی از مرد ثربتمن که در ترانسیلوانیا از زندگی میکرد کرد ای به دستم رسید. میخواست میخواست خونه در انگلستان بخره. به کمک من احتیاش داشت رسمش کند درکوله بود قبول کردم کمکش کنم خونه براش پیدا کردم از من خواست که همه اسناد و کاغذهای مربوط به اونجا را به ترانسیلوانیه ببرم از این کار سید خوشم ایمد صدای پرنده ها طبیعت بوی نمه چه صبح خوبی تا <تصفح> داشتم در پایزه سلاج کنم و نمیخواستم رامزه با مینا رو ترک کنم اما مینا گفت جانتان تو باید بری کنده پودار در ایند کار بیشتری نمی‌دهد. قبول کردم که برم که کاش قبول نمی‌کند، اون موقع از خطر بزرگی که در ترانسیلوانیا در انتظارم بود، خبری نداشتم. چهاران مهمی به شهر کوچکی به نام بیستهریت رسید ترانسیلوانیا کشور عجیب و سیبایی بود همه جا از که درخت قراتخونه بود در اطراف نگاهی انداختم در ارتفاعات بالای کوه قلعه دراغلا قرار داشت با وجود اون و همه نهوتاریکی شم باز هم قلعه بزرگش دیده می شود. ساعتم را از شب کتم درو و سمت نور ماه گرفتن. شیش ساعت موده بود تا دل می رسید منو بغده می برد. در این فاصله تصمیم گرفتم به حوتل کچک شهر برم. داخل آتل کرد و سمینانه بود همه در حال صحبت و خنده بودن یکی از من پرسید می کجا میری غریبی؟ در پاسخ گفتم به قلعه درکولا ناگه هم سکوت همه جا را فرا گرفت همه برگشتن و من را نگاه رو نگاه کردم نمیتونستم علت نگرانی اونها رو بخنم یکی با حالت ترس گفت: هم گفت اونجا نرو, نرو در پاسخ گفتم کار دارم مجبورم که برم دوباره شروع کردم به صحبت کردم اما دیگه خندهای در کار نبود امسر متصدی هتل به آرامی سلیب به رو از گردنش باز کرد و در دستم گذشت نمیتونه سر بزنه اما از برق چش تونستم بخونم که فاطی در کمینم است <تصفيق> وقتی دیجارسید و من سوارش شدم. دی برای تماشا بیآمدم در همان زمان شنیدم یکی گفت مو خونشم ددیجان به طرف کوستانن گ کرد. بالاتر و بالاتر. و تونتر و تندتر می تا خورشید میدرخشید اما در ارتفات کوستان هنوز برای درختها برف بود. ناگه هم خورشید در کوه پایین اومد و همه جا در تاریکی روفت. گرگ ها در جنگل و اطراف مخصه میکشید صدای محشم ناکی داشتن ناگه هم از کوه رایی در سطح راست جده درشکه کچکی با این اومد شام رسم سیاه درشکه رو می کشید چیله با سیاهی و تب و کلاهی روی صورتش باید کشیده بود صدا زد انگلیسی کجاست؟ من از حال اومده زیر وحد ایستاده بود و وضعه عجیبی داشت ناگه ترس وجودم رو فرا گرفت. اما دیگه دیر شده بود نمیتونستم برگردم. چیکار باید میکرده؟ آیا ترس من بیهوده بود به سنتقل ای دراکولا برای آفدن روهای زیادی اطرافمون رو اعاطه کرده بودن ما در پشت ابریسی ها شده بود این چیز قابل رویت نبود ولی صدای گرگ ها رو از پاتون سراتون سر میزهدن درشکی چیدی با در بار میزد که همون درشگ شد در رو باز کردم و پیاده شدن الان فاصله درشگ هرکت کرد هی کجا رفت در مقابل اقل ایتاریک ها باش تنها بودم همون جایی بودم قلعه را تماشا می کردم که در چوبی بزرگمون به آرامی باز شد مرد قد ملتی مقابل هم بود موهای سرش سفید و سر تا پا سیاخ بود به گفت دستش رو بشونم به سردی یخ بود. دو آقل اقل نرفتم و کانت در رو باشستم و احتیاط قابل کرد. کلیت رو در جیبش انداخت و به طرف طبقه ای بالا حرکت کرد. به دنبال شفتن بارد رو تغیی این ما باخش شده دار بود در مقابل اون روی میز کوچیکی غذا من نوشیدنی قرار داشت. اون از من کاست که بشینم و غذایی بخورم. اما خودش من من را نکردم. بعد از غذا. کنار بخاری نشستیم و صحبت کردیم. انگلیسی رو به خوبی صحبت میچرد در حین صحبت فرصتی پیشونت تا به دقیق نگاش کنن صورتش کامل هستفید بود گوشتاش شبیه به گوشگار بباد در دون همونند در ایمانات چیز و بزرگ بود دست هش پر از بود گشت خیلی بلندی داشت دمدم های صبح بود که دراز کشیده هنوز گرگکپی رو نقله. سوسه میکشیدم. صبح روز بعد صبحونهم رو روی همون میز کوچیک در جلوی بخاری آماده بود. اکنون هوا روشن بود. میدیدم که قدر چقدر قدیمی و چثیف بود. در تمام طول روز هیچ خدمتکاری کاری را بود دیدم. کنت سر صبحونه حاضر نشد اما یاد یادداشتی به قلم او روی میز بود در اون نوشته شده بود همهتایهی اصر روز وقتی كنت برگشت میخواستم همهچیز رو درباره خونش که در انگلستان بود بدونه توزیازم رو چنین شروع کردم. خوب، خونه بسیار بزرگیه قدیمی و تاریک دور تا دورش دیوارهای بلندی قرار داره همه جا پار درخت و فضای خونه رو تاریک کرده یک کلیسای کوچکم داره چند تا اکس از خونه رو بهمون نشون دادم از کلیسای خونه بسیار خورسن بود گفت بس نفتی که صحبتمون به طول انجامید و من به طور ناگهانی به خواب رفتم کمی بعد از خواب پریدم و صورت کنس رو نزدیک خودم دیدم بوی که از او به میرسید بسیار مشمحز کننده بود بوی مرده میداد کنس گفت فست شدی وقتی لبخند میزد یا شبیه قیافه گرگ می کارمون دیگه تموم شده بود تموم اصنات و تموم کاغذهای مربوط بخون نشون تعبیل گرفته بود دلیلی نداشت که بیش از این مارو در ترانسیبانیه نگه اما از من نخواست که برم میدونستم دونستم که اون اما در طول روز نمیدیدنش. و فقط شبها وقتی می اومد و با من می میدیدنش همیشه صبح با هم صحبت می کردیم. اغلب سوالی زیادی درباره انگلستان می کرد. یک بار گفت: تصمیم بریل برام درباره کشتی ها و دریا صحبت کردیم. اما لحظه من به فکر مینا و دوستش دوستشلوسی افتادن. لوسی و مادرش نزدیک دریا زندگی میکردن. و اینو قصداش که روزی به دیدن اونها بره از روی حماقت با کوت درباره اونها صحابت کردم آینه در اتاق من نبود؟ اما من آینه رو که هدیه امینا بود با خودم آورده بودم روزی در مقابل آینه بایستده بودم و خودم رو اصلاح می کردم ناکه هم دستی مدا رو کرد و صدایی گفت کونس در کنارم شده بود بله کنت در کنارم شده بود اما نمی تونستم رو من توی آینه ببینمش دستم در زیر و صورتم را زخمی می کردم خون از صورتم جاری شد و کونت رو دیدم که هری ساعتش دکتر که خونت رو نگاه میکنه ناگهان دستش رو دراز کرد ششماش نگاه خشنی داشت سرز کن شدم رو فرا گرفته بود دستش به صلیب طلایی که در کردنم بود برورد قیافش تغییر کرد آینه را از من گرفت با سرعت به سوی پنجره رفت لحظه ای آینه در ماین قلعه زار که شد حرفی نزد اما سری از اتاق خارج شد همون جایی استاده بودم با خودم فکر می کردم فکر می کردم که چرا نتونستم کنت رو در وای نمی به طرف پنجره رفتم بیرون رو نگاه کردم در ارتفاع بسیار بالایی بودم بیشتر در درایفل قبر بود. امّا چهود که فهمیدم، من سنتوری است. آنچه که در قسمت بعد خواهید چنین که انس لباسی اضافی و مدارکی سفر برای من کرده. و در اتاقم را گفه کرد کنید من کچه هستم خود تا حافظ نیدم نبیتونم بازم میبینم ازیا نبیتونم بازم خدا دا بسیده درک کردم سروم کردم و خودمون ها شما زمان دردن و بلان کنید صدای من بشه خیلی اینجا درداری شدم How جک اسکافیلد، کیوانه آمرزاده، در نقش آرتور، آریا توکلی در نقشه پروفسور ون هلسنگ، نگار زادی در نقشه مینا، فرانگیس مشتقی. سفراست گویانندگان ایمان کمال زاده نویسنده: برام استوکر بازنویسی داستان: حامد زراعی صدا بردار و موسیقی مت ایمان کمال زاده تهیه کننده چس نراقی کارگردان حامد زایدی امیدوارم از برنامه امروز ما راضی بوده باشید. دیگه به پایان برنامه رسیدیم و برنامه های بعدی ما هم حتما همراه باشید. خدا نگهدار. رادیو گردوی.